خب ببینیم سراغه استراتیجی گرند ببینیم استراتیجی گرند دو تا متقیر رو باید بدونیم به استراتیجی گرند دو تا متقیر یکی کامپتیتیو پوزیشن یعنی جایگاه رقابتی یکی مارکت گروف یعنی رشد بازار خب این داتا متغیر رو برده میرم این داتا متغیر چیه؟ کامپتیت پوزیشن یا جایگاه رقابتی یعنی چی؟ یکی یعنی تو ذهن مشتری جایگاه یابی شما مثبت یا منفیه این یعنی مشتری حس مثبت نسبت به شما داره یا حس منفی نسبت به شما داره؟ منظور چی دارم میگم؟ نه. دقت کن. وقتی کالایی رو به مشتری در میفروشی، مشتری دو تا حس نسبت به شما داره. شما فروشنده خوبی هستی، محصولاتت با کیفیته، قیمتت پایینه، برندت عالیه. وقتی مشتری این حس نسبت به شما داره، یعنی پوزیشنه پوزیشن جایگاه شما تو ذهن مشتری مثبته. و اگر مشتری اصلا حسی نسبت به شما نداشته باشه نسبت به کیفیت محصولاتت قیمت محصولاتت پراندت نداشته باشه یعنی جایگاه شما تو ذهن مشتری منفیه متوجه هستید امش کمپتیتیو پوزیشن مارکت گروث یعنی چی یعنی رشد بازار رشد بازار یعنی چی میتون توضیح من بدید؟ رشد بازار یعنی چی برای خود تازه باشه خودت تازه باشه محصولت زیاده یعنی چقدر تازه هستش که زیاده یا کمه وقتی زیاد باشه رشد پیدا می‌کنه کم باشه ریزش پیدا می‌کنه رای چقدر تو بالا خب درست می‌گی ببینید وقتی که مارکت گروت یا رشد بازار بالا باشه اینجوری ببینید ببین رشد بازار اگر بالا باشه یعنی چی؟ یعنی مشتریات زیاد خب یعنی حجم مشتری ها افزایش پیدا. درسته؟ با. یعنی چی؟ وقتی حجم مشتری بره بالا، حجم تامین کننده با. بالا میره یا با. پایین میاد؟ حجم بالا. خب پس حجم تامین کننده میره بالا. بختی که حجم تامین کننده برو بالا یعنی چی؟ یعنی رقابت افزایش پیدا می‌کنه، کاش پیدا میکنه افزایش. پس دقت کنید، پس دقت کنید، مارکت گروث یا رشد بازار ارتباط مستقیمی با حجم رقابت، داره. با حجم رقابت داره. یعنی اگر رشد بازار بالا باشه، حجم رقابت سنگین‌تره. اگه رشد بازار پایین باشه یعنی حجم رقابت پایین پایین‌تر. وقتی بازار کشش داره شرکت‌های مختلف دوست دارن وارد حوزه رقابت باشن درسته؟ ها. خب حالا گراند استراتژی چی میگه؟ دقت بکنید. در گرند استراتژی بر اساس این دو تا خیلی راحت بر اساس کامپیتیتیو پوزیشن این جایگاه رقابتی و مارکت گروث رشد بازار ببینید شما تو این فضا میافتید تو این فضا میافتید تو این فضا می افتید یا در این فضا میافتید اگر شما کمپتیتیو پوزیشنتون استرونگ یعنی جایگاه رقابتیتون قویه تو ذهن مشتری یعنی مشتری نسبت به شما حس خیلی قوی داره در ذهن مشتری خیلی قوی جا افتادید متوجه اید و مارکت گروث سریع یعنی حجم رقابت بالاست متوجه ای تو سنتی که شما داری تورد کالا و خدمات میکنه شما در محیط شماره یک میفتید اگر strong competitive پوزیشن دارید یعنی جایگاه رقابت تو ولی slow مارکت گروثه یعنی حجم رقابت پایینه متوجه هستید شما توی این محیط میافتید. اگر weak competitive position داره یعنی جایگاه رقابتیتون زعیفه باید با. ولی از اون طرف حجم رقابت هم بالاست خب شما تو چه مویتی میفتید؟ تو این مویتی میفتید اگر weak competitive position داره یعنی جایگاه رقابتیتون ضعیفه و حجم رقابت جامد. جامد. کمه تو این مویتی میفتید. فارمیتی بهم میگه بهترین مویت کدوم مویت دو. کدوم؟ این. چا. یه. آره دیگه. این مویت سه. این مویت جایگاه رقابتی قدی 8ه جایگاه رقابتی قدیه و این مویت سه رقابتیه. جایگاه رقابتی قدیه. فال حجم رقابتم سنگینه. این محیط محیط خوبی نیست. حجم رقابت سنگینه ولی تو تو محیط رقابتی عقب هستی. تو جایگاه رقابتیت ضعیفه. و این محیط هم یه محیط خیلی بده. جایگاه رقابتی ضعیف، حجم رقابتی هم پایین. اساساً یعنی یه بازار به درد نخوره به ورطه یا حداقل شما در یک بازار به درد نخور وضعیت خوبی هم ندارید. متوجه منظور من هستید؟ حالا شما خیلی راحت بر اساس این دوتا متغیر را تو کدوم محیط میفتید بر اساس جایگاه رقابتی و حجم به یعنی مارکت گروت، یعنی رشد بازار خب، محیط شماره یک اگه تو محیط شماره یک بیفتید، این هفت استراتژی را باید اتخاص بکنید یک اگه تو این محیط میفتید میشه اینجا شکل شما هم ترسیم کسیم کسیم این همین هم، این این فرشت رو مثل اسپیس دیگه ترمیمه ولی آره برای معلیفاش ما... برم مخارب داره یعنی از نگاه دیگه ای داره بیزنس رو تحلیل میکنه ببین، ابزار سربا برای برنامه ریزی استراتژی های شرکتی استراتژی گرنده چون از دیدگاه دیگه ای داره تحلیل میکنه این دیدگاه چیه؟ میگه شما جایگاه رقابتی جایگاه رقابتی رشد بازار یا حجم رقابت مثبت منفی مثبت منفی درسته اگر جایگاه رقابتی قدی رشد بازار هم قوی یعنی حجم رقابت هم سنگین شما توی این محیط میوید یعنی بیزینس تو این مونیت اگر جایگاه رقابتی مثبت حجم رقابت ضعیف توی این محیط میوید اگر حجم جای... رقابت سنگین و جایگاه رقابتی ضعیف توی این محیط میوید اگه جفت سه یک باشه تو محیط چهار باشه. یه جایگاه بیفتین رقابتیش پایین باشه، رشدش خوب باشه. رشد بهترین این بهترین حالته. این بهترین حالته این, این, این محیط. چرا؟ چون حجم رقابت ضعیفه، جایگاه رقابتی هم حالا شما بعدا تو بیزینس خودت خیلی ساده. الان شما تو شین فروشی، جایگاه رقابتی چجوریه؟ مثبت یا منفی؟ نه. شیرینی لا برند ایشون ميلا. این آقا رو شیرینی که این آقا داره تولتولی برندش یعنی رو. بعده سازمانش رو، اسم کسب و کارش رو، تو رو الان جایگاه شما تو رقابت مثبت، منفی چجوریه؟ متوسطه. یعنی شما متوسط. متوسط صفر. پایین میجوری میشه. اینجا. هاش من هم شما تو این متوسط. بعده باقا بیانا آره، یاد شما من فکر میکنم جایگاه رقابتی چجورو تو بازار جایگاه رقابتی توی؟ تو رو نیست یعنی مصبتی؟ برد مصبت، هجم رقابت تو که سنگینه دیگه، ضعیف نیست تو این محیط میرفتیم خیلی راحت حالا، اگر تو این محیط میرفتیم، محیط یک استراتژی که اتخاذ میکنید و یادداشت کنید بهتون میگم تو رسوخ در بازار، اگه محیط شماره را یک، این محیط میافتید. توسعه بازار توسعه بازار رسوخ در بازار خب توسعه محصول یک پارچگی عمودی و افقی و تنوع پذی غیر درسته؟ این از استراتژی خیلی ساده اگر تو این محیط باشید محیط شاره دو تنوع پذیریه. همگه غیر همگه استاد ببخشید قبلیه کدومش یکی شو چون هفت تاستون 5 تا با هم نوشتم، من یک واشگی عمودی و افقی رو با هم نوشتم بله <تصفيق> طلب و فضلی همگه غیر همگه افقی من فکر کنم استاد میشه هم میشه این بله، اصلا کانسنتریک دایریشیفیکه میشه همگر. Oh, همگر well, میشه. حالا می‌میریم رایت. کنتریک میشه همگر. حالا می‌میریم میشه که همگر. درسته؟ تراب و پذیری و افقی و با یک پارچه‌گی و افقی. درسته؟ اگه تو این موقعیت بیفتی. تو این محیط بیفتی خوب توسعه بازار رسوف در بازار توسه محصول یک پارچگی افقی سپاری انحلال اگه تو این محیط بیفتیم کاهش طلب و پذیری همگن همگن طلب و پذیری غیر همگن طلب و پذیری افقی و انحلال <تصفيق> ببین این ابزار خیلی راحتره از اسپیس ها فقط در مشخص بگیم تو چه محیطی میفتی؟ تو هر محیطی استراتژی ها مشخصه که چه استراتژی بعد باید فالو کنی یا چه استراتژی ها رو اتخاظ درسته؟ این از اسپیس هم دیگه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> درسته؟ کلیه مشخص شده قضیه، سلام سوالی هست، هزم برای تو بفر جایگاه رقابتی و روشو بازاره من با چه این مدار جنم ببین، جایگاه رقابتی، یعنی مشتری تو ذهن مشتری تو چی جی رو جا قفت داری؟ مصبت یا بایدی شدن یا دیگه، اصلا ببین خیلی ساده دوستان، معنی دیگه جایگاه رقابتی خیلی ساده برند برند مصبفی یا منفیه برند قویه یا ضعیفه جایگاه رقابتی تعریف دیگه دیگهش برنده خیلی ساده خب حجمه رشد بازار اینه حجم رقابت آقا تو که دو داره فعالیت میکنه حجم رقابت سنگینه یا ضعیفه تمام شدارم براساس اساس این دوتا اگه برندت قویه حجم رقابت سنگینه مستنجا. اگه برندت قویه حجم رقابت ضعیفه، میوفتین اینجا. اگه برندت قویه حجم رقابت بر سمی برندت ضعیف میوفتین اینجا. اگر برندت ضعیف، و حجم رقابت هم ضعیف، میيفتین پس این چیره میشه، یک و دو و سر و چهار آره. چهار کنیam این اسپیس. مناتهان معلیف با اسپیس میکنه یعنی اون متقیر ها پرخ میکنه حالا چرا ما با متعاقب دقیقاً ما داریم با های مختلف یه بیزینس اسسس میکنیم یه بیزینس اندازه‌گیری میکنیم با سوات تحلیل کردیم با ماتریس اسپیس از دیدگاه چهار پارامتر تحلیل کردیم که وضعیت شرکت کجاست از دید برند استراتژی میاد نیا دلیل رقابتی و حجم رقابت وضعیت سازمان کجاست وضعیت سازمان خودتون کجا میشه الان ما برند برند خوبیه و برای اجتناب از سنگینه ما اینجا میوفتیم. توسعه مازونوس. آره. چه گین استراتژی ها بعد اتخاذ کردن؟ از دیدگاه برند این استراتژی رو بعد اتخاذ کردن. ببین از دیدگاه سوات ما یه سری استراتژی اتخاذ کردیم. از دیدگاه اسپیس یه سری استراتژی، از دیدگاه گرند یه سری استراتژی. حالا از دیدگاه بی سی جی ما داریم سیم جان، بعد چند بندی می‌کنیم. جان، حالا آره. آره. جون امروز تو نمی‌خوای سر وقت با همش نه، ببین تو کاری نداشته باش، تو فقط ببین کسب و تو کدوم موزه می‌افته؟ از دیدگاه رند، از دیدگاه اسپیس هم ببین تو کدوم موزه می‌افتی؟ هم تو کاری نداشته باش، ممکنه الان از دیدگاه اسپیس برای جلو توسعه محصول پیشنهاد نشه ولی از دیدگاه رند تو پیشنهاد بشه. ولی حالا واقعا توسعه محصول رو باید اتخاذ کن یا نباید اتخاذ کنه، حالا بحثه. سوال هست، انا جهده در اطور ها؟ باید سراغ سواله افزاره بردیم افزار؟ برای این هرشنگ داره یک سالی این هرشنگ دردش کنم خب بی سی جی متریکس یا بوستون کانسالتیشن گروپ یا گروه مشابره بوستون گروه مشابره بوستون خب ابزاری رو معرفی کرده به نام بی سی جی متریکس یا ماتریس بی سی جی درسته؟ گروه مشابره بوستون چی میگه؟ میگه برای این که ما استراتژی‌ها رو برای یک سازمان اتخاذ بکنیم دو تا مؤلفه برامون مهمه سهم بازار خب رشد بازار یا حجم رقابت درسته دقت کنیم به دست من رشد بازار از سمت راست به سمت چپ حالت افزایشی داره حجم رقابت هم از پایین به بالا حالت افزایشی داره داستانی که وجود داره میگم ممکنه وضعیت شرکت اینجا باشه اینجا باشه یعنی چی؟ سهم بازار پایینه وقتی اینجا باشی یعنی سهم بازاره کمه <متصف> حجم رقابت هم کمه <متصف> درسته؟ این وضعیت بهش میگم وضعیت سگ وضعیت سک وضعیتش که بیزینس سهم بازارش پایینه حجم رقابت هم کمه درسته؟ خب؟ آنه بدون آنه میرسیم بیش که چه استراتژی رو بعد اتخاذ کنیم خب؟ یه موقع وضعیت شما اینجاست اینجا چه حالتیه؟ سهم بازار پایینه ولی حجم رقابت سنگینه این وضعیت بهش میگم وضعیت میکشمار. question mark یا علامت سوال وضعیت علامت سوال وضعیت علامت سوال، است که سهم بازار پایین و یه حجم رقابت سنگین خب؟ ممکن بیزی بیزینس شما اینجا باشه یه سوال ازتون دارم، اگه بیزینس شما اینجا باشه، چیکار برد بکنید؟ سهم بازار پایین حجم رقابت هم سنگیده، چیکار برد بکنید؟ موشت. یه سوال، همینجور، یه سوال بگیم نه، یه سوال کوریو بگیم آره، بینید اون سختر بازار رو باید انج یا به عبارت بعد زیر ساختت رو تقویت بکنی. درسته؟ چون اگه زیر ساختت رو تقویت نکنی حجم رقابت سگی تو همجاست سر بازارت کرد اگه بخوای سر بازارت ببری بالا، چکار بعد بکنی؟ بعد تضریقات بکنی. بعد زیر ساختت رو تقویت بکنی. بعد منابع انسانیت رو تقویت بکنی. خب؟ یه موقع وضعیتتون اینجاست. این چه وضعیته؟ سر بازار, بازار, بازار, بازار, بازار, بازار, بازار, بازار بالا، حجم رقابت بالا. این وضعیت ما بهش میگیم وضعیت ستاره یا استار. اوکی؟ سلول چه جالبه؟ این سلول چه سلولیه؟ سهم بازار بالاست، حجم روابط. چمانده. چمانده. چمانده. این وضعیت بهش میگن گاب شیرده. حال می‌کنه. کشکاو. جهت این وضعیت بهترین وضعیت، پول می‌آره فقط پول می‌آره. مثلا این وضعیت بهش میگن وضعیت دلار. خب؟ سهم بازار بالا، تحرید رقابتی هم نداره. یعنی انحصاری داری می‌فروشی. یعنی انحصاری داری می‌فروشی. این وضعیت بهش میگن وضعیت دلار یا وضعیت پول مالی. جان. همچنین وضعیته مثلا ایران خودرو به نوعی آره ایران خودرو با بابر... ولی ایران خودرو مش پول نداره نکته اگر ایران خودرو واردات نه واردات ماشین های خارجی انجام نمیشود اما اصلا ماشین خارجی داره وارد میشه ماشین های چینی ماشین های ژاپنی کره‌ای ایران خودرو با شیده بود و الان با واردات انبوه برندهای ماشینی که داره انبوه چینی داره وارد میشه وضعیت ایران خودرو ستاره است درسته؟ سه همه با بالاست ولی هشت منقابت هم سنگیره سطا رو با چی کنم نوستم؟ حالا بهتون میگم چه استراتژی؟ اینو متوجه شد داستان بی سی جی رو؟ آره؟ خب پاک کنم؟ خب ایستاتژه یک کلدر به من من یک, یک پارچگیه دیگه جلو من نمی نیستم عمودی درسته؟ ها؟ یک پارچگی افقی درسته؟ روسوخ در بازار بازار توسعه بازار توسعه محصول تنوع پذیری پذیریه همگه پذیریه غیر همگه تنم پذیری افقی کاهش برونسپاری، سپاری, برون سپاری. مشارکت آره. یک پاچه یه میشه آن مشارکت آره دیگه ستاره علامت سوال باب شیرده ای ماتریس پنی میسی این ماتریس را تو هیچ کتابی شما پیدا نمیکنید، هیچ کتابی. دوستان، اگه وضعیت شما وضعیت سگ باشه یعنی سهم بازار پایین حجم رقابت هم کم درسته؟ یعنی بازارم کشش نداره سهم بازارت هم پایینه اگه وضعیت وضعیت سگ باشه درسته؟ ببینیم چه استراتژی ها رو باید انتخواست کنید ها؟ یک باچه یک عمودی رو دیرید سمتش؟ اگه بازار تو وضعیت ساک باشه ببین، وضعیت سک، سهم بازارت کمه هشت من هم پایین، بازار هم کشش نداره می سراغ توسته زیر ساخت یا نمیری؟ باید چرا باید بری؟ بازار کشش نداره که؟ فایی هم نداره بری سمتش، درسته؟ اه. نمیری سمتش یک بازدگی افقی چی انجام میدی میشه روش بری جمع... ها آره بازار کشش نداره. سمب بازاره تو هم پایینه. اینجا مثلا تو میتونی با یه شرکت دیگه که برند قوی تو بازار داره جویت بشی تا مثلا یه فروشی داشته باشی. ها؟ بله، ام... میشه. افقی رو پس پیشنهاد میدید. درسته؟ رو در بازار چی؟ نیمه سمتش؟ بازار کشش نداره که چه دوست دار بازاری توسه بازار چی کشش نداره توسه محسوless نه نهارو. درسته تناف و پذیری همگی غیر همگیه نباید انجام میدی وقتی بازار کشش نداره چه تناف و پذیری درسته نهارو. پس این هم انجام نمیدی تناف و پذیری افاقی چی در حالت ساده میشه بهش فکر کرد چون تناف و پذیری افروی بیزینس شما تو سگ باشه ولی میای یه محصولاتی رو ارائه می‌کنی چه بسا از اون می خوای سود داشته باشی یا درآمد داشته باشی ولی باعث تقویت برندت یه میشه خب پس این انجام میدی به سمت کاهش میریم؟ بله میری به سمت درون‌سپاری بله میری و انحلال شک می‌گیره و رو اگه سگه کاهش و انحلال رو shaft خب و البته دوستان نکته که من خدمت جلسه گذشته گفتم استراتژی گورن سفاری برای تمام وضعیت‌ها پیشنهاد میشه. درسته. همین رو می‌زنیم. رشک بود، هم تنوع‌دهی بود، هم برای جان، همین رو آره، به اگه وضعیتت سگه چه استراتژی رو باید اتخاذ کنی؟ یک پورتفولیوی افقی؟ درسته. تنوع‌پذیری افقی، کاهش گورن سفاری، متوجه شدی داستان چی شد؟ آره؟ دوستا معمولاً این دایز پایان عمره یه معامله به عبارت داره. ولی یه موقع شما اون معاملهرا میخواد نگهش داره. درست پایان عمرشه ولی میخوای نگه نگه‌داره که تو بازار باشی. یه جریان نقدینگی برات ایجاد کنه. به خاطر همین که من تنوع پذیری افق رو داشتم. کپسول اینطوری هست. به نوعی آره. خب hop بهم ستاره. ستاره شادقیه. سهم بازار بالا درسته؟ حجم رقابت هم سنگین. یک واچگی عمودی رو انجام میدید در حالت ستاره تو سه ساختم؟ واست. باید انجام بده. بله، تو این از بجو صد یک واچگی عمودی برای همه حالت‌ها پیشنهاد میشه. درسته؟ انجام میشه. یک واچگی افقی چی؟ سهم بازار بالا حجم رقابت هم سنگین. باشه انجام. جنج آره. <متحدث> یکی از توهایی که اصلا شما رغمان تو بخوایی نوترالایز بکنی خونسا بکنی، یک پاچکیه؟ افقیه رسوم در بازار، پیشنهاد میشه؟ بله توسعه بازار، پیشنهاد میشه؟ لا لا لا. بله توسعه محصول؟ بله, بله. بله. تنم و پذیری همگه؟ لا. بله غیر همگه؟ لا. بله و پذیری افقی؟ بله تنم پذیری افقی؟ کاهش نه, نه. برون سپاری نه. نه. بله نه. انحلال نه. نه اگر وضعیت وضعیت ستاره است یک پارچگی عبودی رو داری افقی رو داری رسوخ در بازار توسه بازار توسه محصول طرف و پذیری رو داری برون سپاری داری ولی کاهش و انحلال نداری درسته؟ یعنی وضعیت وضعیت ستاره است متوجهی همه استراتژی رو دارید به جز کاهش و انقلاب درسته؟ اگه وضعیت وضعیت علامت سواله علامت سال چه وضعیتیه؟ رشد بالا علامت سال چه وضعیتیه؟ سهم بازار کم حجم رقابت ها خب اینجا یک پارچگی؟ عمولی رو باید داشته باشی درسته؟ نه افاقه رو داشته باشی افاقه هم داشته باشی روز در بازار اونم توسع بازار چی؟ لازمه؟ زمانی که وضعیت علامت ساله آیا ما باید توسعه بازار رو داشته باشیم؟ نه چرا نه؟ چرا آره؟ توسه بازار رو بخون اون سم شما سهم توی بازار کمه بعد میخواد توسعه بازار بدین بری تو بازارای دیگه کار بکنیم مم. تو حتما توی بازار سهم بازارت کمه بعد میخواد به سراغ بازارای دیگه این سهم کشنده است برای بیزینس شما گرفتی پوینت منو وقتی شما توی بازار سهم بازارت کمه رو اون بازار وقت نه، این سراغ بازارای دیگه اصلا منطقی نیست درسته مم. پس توسعه بازار پیشنهاد نمیشه توسعه محصوله تو پیشنهاد نمیشه شما وقتی که سهم بازار رو بازار کردن خیلی محصولات تفصیش بدی خب این خود کشتی یعنی تنوعی دارو انداختی رو گردنت خوب تنوع پذیریا چی پیشنهاد میشه اونم پیشنهاد نمیشه بعد تو وقتی سهم بازار فکمه تو سمت تنوع پذیری اونم پیشنهاد نمیشه یعنی تنوع پذیری و غیر پیشنهاد نمیشه نمیشه با. پذیری افقی چی پیشنهاد ممیشه. میشه چون از دلیقا تنگ پذیری و میتونی سهم بازار تو افزایش بدی مثل تبلیغات خوب کاهشی پیشنهاد نمیشه برون سفاری پیشنهاد میشه انحلال پیشنهاد نمیشه, نمیشه. پس تو اگر علامت سوالی یک پارچگی عمودی یک پارچگی افقی رسوخ در بازار تنب و پذیری و افاقی ببون مستفایی اینا استراتژیات. اگر علامت سوال هستی متوجه شد راستان چی شد؟ شما متوجه شدی؟ بله بله بریمیزیم سوالی هست برای شما؟ متوجه شدیم؟ بله که نموست بله وق علامت سوالی سهم بازارت میخوام بریم توسعه محصول بدی توسعه بازار بدی طلب و پذیری که به هیچ عنوان مران وجود رو روزی ساختت کار کن یک پاتچیوی افقی اوکی رسوخ در بازار بله اصلا باید رسوخ در بازار داشته باشه که بازار کرد، صم بازار تو افزایش بده و رسوخ در بازار بعد باشه طلب و پذیری افقی شک نکنه طلب و پذیری افقی هم عین برون سپاری همه پیشنهاد میشوا و برون سپاری ببینم صرغ قاب بشیرده حالا شما قاب بشیرده به من بگو چه استراتژی‌ای اختصاص بده یک پارچگی عمودی باشه یک پارچگی عمو هم... ببین قاب بشیرده چه حالتیه سهم بازارت بالا درسته هشملقابت پای اگه قاب بشیرده اصلی تو سه زیر ساختا دار کار کنی یا نه نه تو خوش درآمد سودایی در حال سودایی هست خب توضیح کنند. در حس صورت بعد کار کنی تو, تو, تو, تو, تو, تو اگه تو گاب شیرده هستی بعد منابع انسانی تو کرد کنی تجهیزات تو کرد کنی خبرایم نمیدنون سازمانی ده روش داره تو سعیشون بدهی و یه چیز میگه ما اگه یه رو تو قاب شیرده نداشته باشی وارد سک میشی اینی بازار تو دست یا وارد ستاره می‌شی اگه خود قاب شیرده باشی حتما بعد یه چپارچه عمونی رو انجام بدیم درسته؟ یک پاچگی، دو افقی چی؟ یک پاچگی یو این یک خود درستان مشکلی که نپمین یک پاچگی هم یعنی یک افقی... بخوندن دادن بخون با بچه ها جنش رو به توضیح بدن حتما این کارو علا آی مهندس نایمده این جلسه خانمم نایمده خود شما قضاوت کنید اگه این جلسه نبودید متوجه میشدید داستان رو یک شما قاب شیرده اید سهم بازار بالا حجم رقابتت پایین اصلا انحصاره داریم میفروشی میره تو یک پاچگی افقی نایی مریض نیم <تصفيق> تو وضعیت طبیعت تو بازار دیگه یه کاری با رقیب برای چی باید انجامه تو وضعیت طبیعیه دلیل اینکه منو دارید هم کاری با, با نه درست میگه نه چرا اخویدی کار برات تو به خطر میندازی ممکن یک سری به قول معروف شما نقاط موفقیتو و کنی یه سری کی سکسس فاکتور داشته بعد در ردی وقت جونج میشی یعنی عملا داری موارد مهرمانه تو سازمانم به کوش لخت بنسونید. دلیل نداری این کارو بکنی. واسه عادیه پاجی همون چی میشه؟ تو سزیم ساخت. تو سزیم ساخت. یعنی به عبارت دیگه اینجا اگه بودی کسی هم اومد این کارو با شما بکنه، نباید. نباید بکنه. اگه تو وضعیتش قده دلیل, دلیل برام کنه، شما دارید انحصاری میفروشی. چرا دلیل باید شما همکاری بکنی؟ حالا مثلا ایرانی اقتدار مثلا چه رسوخ در بازار اگه تو گاو شیرده هستی بله بازار هستی یعنی گرفتی بازار گرفتی رسوخ در بازار بی معنیه لازم نیست توزه بازار توزه بازار لازمه بله چرا بازار میتونی به بازارهای دیگه هم توسع بازارو داشته باشی توسع محصول هم هم نویدو داشته باشی تنمو پذیری, هم. پذیری همگر شی یعنی چی استوال؟ یعنی محصولات مشابه تولید بکنی تنمو پذیری همگر یعنی محصولی داری تولید کنی درستان به محصولات دیگه مشابه با محصول ممیده من اظر من خوب باید انجام بود نتونی انجام بده تنوع پذیری غیر همgene یعنی محصول یعنی داره تولید می‌کنیم به سمت محصولات دیگه که مشابه با محصول شما نیستن. مثلا همون که مثلا فقط یه چای داره تولید می‌کنه تلویزیون هم تولید میکنه. اینا هیچ شباهت به هم نداره. خودرو داره تولید میکنه. این ما بهش میگیم تنوع پذیری غیر همgene. ولی اگه شما شیرینی داره تولید می‌کنی، کیک داره تولید می‌کنی، چه مثلا دسر داره تولید می‌کنی، دسر با این شیرینی خوش تنوع پذیری همgene، مشابهه. میشه میشه دوستان اگه قابه شیرده هستی تنمان بازیری همگه باید چرا باید بدین؟ با خاطر اینویسمنت دهید میشه تنمان بازیری چرا باید غیره همگه رو بریم بسنم؟ تو الان به صورت انحساری محصول داریم فروشی پول هم هم داشت داریم درمیاری برندت ری به سمت محصولات دیگه ریسک تو داری افزایش می‌دی چرا بعد این کارو بکن دلیل نداره این کارو بکنی استاد چون برنده اون قضیه می‌تونیم رو اونم مانور بدیم تو اون محصول ضعیف باشی شما ببین الان اصل شبکه ببین اصل شبکه دوره آی برگزار می کردن وارد دوره مدیریت شد ریسک بالاست تو دوره آی تی برندش خوبه ولی اگر تو دوره مدیریت ضعیف عمل کره اما برندی که تو آی تی سافترا می‌تونه خرابش کنه درست می‌گی نه فصلن با پذیریه غیر همگیت پیشنهاد نمیشه افوقی چی؟ افوقی یعنی چی؟ افقه. یعنی شما یه محصولی داری تولید میکنی یه محصول دیگه هم در کنارش تولید می‌کنی. اون محصولی که داری تولید میکنی در کنارش ازش سودی نداری، درآمدی نداری. برای جونی جنز، داری تولید میکنی، حالا چون جونی جنز، من می‌گم تولید می‌کنی که محصول اصلی تو بفروشی. یه جوری نقش تطبیقاتی برات داره مثلا بانک پاسارگاد کارش بانک داری بانکداریه دیگه ولی بیمه پاسارگاد داره ارائه میکنه بیمه مسافرتی پاسارگاد بیمه عمر پاسارگاد از فرایندی بیمه نمیخواد درآمد سود داشته باشه ولی این بیمه رو ارائه میکنه که محصول اصل بده این اینا بهشون تنوع پذیری افقی اینا هم باعثه بله کاهش لازمه نه خیر انحلال خیر ولی برو پس اگر شما تو که آبه یک پارچه بیه عبودی خب؟ توسعه بازار، توسعه محصول، تنب و پذیری همگر، تنب و پذیری افقی و؟ برون سپاری اصلا برون سپاری بایست نه، ببین من جلسه گذاشته به شما گفتم برون سپاری برای هر بیزینسی اپلیکیبله. شما باید فعالیت‌های غیر بحرانیت تو برون سپاری کنید جایی اگه برون سپاری نکنید، تمرکزت از بین میره تو کیفیت محصولات تحصیل میذاره ببینیم، من الان آنالیز آنالیز رو همه رو برون سپاری میکنم آزمایشگاه یاد کنم، آزمایشگاه رازی که معتبره در ایران، کارشون خوبه آنالیزم، مکتریاله من برون سپاری مریضم اگه خودم انجام بدم چرا برای خودم انجام بدم؟ ما کلیو از این نزده کلیو از آره هزار جور داستان داره متوجه ای؟ بله. بی سی جی رو متوجه شده داستان شو ها؟ بنده آره؟ بله <تصفح> <تصفح> دوست اصلا بشون راحتا نه بکنم بی سی جی روی خب دوستان، ما برای برنامه ریزی کلان شرکتی، یعنی Corporate Level Strategies، درسته؟ دوباره بریم سراغا بحث خودمون عمض کردم، کسب و کار، اگر کسب و کار ما به شکل یک مثلث ببینیم. PK مثلث رسیدن به چشمانداس و رسالت راه رسیدن به چشمانداز و رسالت بهش میگن استراتژی استراتژی یعنی نحوه رسیدن به چشمانداس و رسالت درسته پله اول از این استراتژی ها استراتژی های کلان شرکتی بود درسته پله دومش استراتژی های تجاری. تجاری و پله سومش استراتژی های عملیاتی ما در دعات با استراتژی های کلان شرکتی چهار ابزار خدمت معرفی کردیم درسته عمليات. سوات، ابزار سوات خب ابزار اسپیس ابزار گرند و ابزار بیسیجی بیسی آنه سواد داخلش می شود کی این می شود درسته؟ برد. این چهار ابزار به ما کمک میکنه برای برنامه ریزی کلان شرکتی یعنی برای کوپرلیویل استراتیجیز به ما کمک میکنه اوکی؟ برد. که من سواد خدمت رو گفتم اسپیس رو گفتم گرند رو گفتم بیسیجی رو گفتم هفته آینده ما این رو میکنیم. و مشخص میکنه که از این چهار ابزار ما چجوری میتونیم استفاده کنیم برای برنامه ریزی کلان شرکتی خب؟ من خواهشی که دارم هفته آینده یک بار دیگه ریویو بکنید سوال چیه؟ مثلا شما که عشق سواتی برو تشک میگنه ریویو بار بار به شما سوات گفته میشه خب؟ قاشا بروما برنا چند تا مختلف آره ودا کنم آره یه ودا اساسی <تصفح> اسپیسو بخورید که من تو این لفظ برند رو بخورید پی جی رو بخورید تا من هفته دیگه برنامه‌ریزی کلان شرکتی رو براتون چنبندی بکنم که چجوری شما این چهار ابزار میتونید استفاده کنید تا برنامه‌ریزی کلان شرکتی داشته باشید تا الان من هر چی گفتم فقط ها رو براتون باز کردم سواد چیه اسپیشال برند چیه و سی جی چیه؟ بعد دیگه باید استراتژی های تجاری میشیم خب؟ که حالا هفته دیگه فتمنت من توضیم سوالی هست؟ استاد متریال دیگه نیستی نه؟ بلی... کامل دوان به تو سوالی هستش؟ نه هست هست هست هست من خواهشی که دارم هر درس رو یاد نمیگیری مدیریت استراتژیک رو یاد بگیری جدی میگرد من این ای که قیبت هم که نکن خب، حسنا هم باشید، آل خیلی مند